جمهوری ایرانی بر شالوده تیف می شود اخلاق اخلاق ارزشی می شود اجتماع و سیاست بر پایه تیف قرار می گیرد وقتی اخلاق عرضشی از کجا پیدایش میابد؟ از منش رنگ و آهنگ خدای ایران ارتا سیمرغ در چی، چه پیدایش میابد؟ در رنگین کمان و در آهنگ که از صدها ابزار و موسیقی در یک راه با هم دستان سرا میشوند یعنی یک سمپونیس یک غوس و غزه، یک باغ است و پر از گل گلهای رنگارند این شالوده تیفی فرهنگ سیاسی و اجتماعی و دینی ایران است مفهوم ارزش به کلی با مفهوم نیک و بد یا خیر و شر یا حق و باطل در ادیان نوری فرق دارد ارزش با پذیرش طیف و رنگین کمان کار دارد برای این خاطر بود که سیمور این همانی داده میشد با با سبزقبا یا با تابوس یعنی باهوت و در آن در فرهنگ ایران در آن سیاه بر ضد سپید درک نمی‌شود بلکه سپید و سیاه از جمله رنگ‌های متعلق به یک تیپ هستند. اینها به هم پیوستند و رنگ ها با هم اصل پیوندند. ببینید خدای ایران در اصل خدای روشنی نیست چون که روشنی را رو با سپیدی بعدش این همانی دادن در خدای ایران در رنگ پیدایش میابد در رنگارنگی سبز میشود هر چیزی که سبز شد گلهای رنگارنگ میشود اسم این خدا هر تا گلچهره بوده است تمام گلها شهره او بود، ذات او بود است که هر روزی این گلها، گلهای متفاوت به این خدایان ایران استاد یک اصل در تمام این گلها نمودار می شود یک دست گل دسته است خدای ایران یک گل دسته است دسته دست گل است بساک است در اینجا سپید و سیاه از جمله رنگ های متعلق به یک تایپ هستند رنگ ها با هم اصل پیوندان نه اصل ستیز. در سپیدی و سیاهی، ظلمت و نور، اینها در ستیز با هم قرار میدن. اسلام و مسیحیت و یهودیت در حقیقت ارزش اخلاقی و اجتماعی و سیاسی ندارن. مؤمن و کافر و تقسیم جهان به دو بخش دارالحرب و دارالسلام سلام گستردنی به پدیده تیف نیست برای همین خاطر است که در اسلام تابوس را دوست و همکار شیطان می دانند و را مار با هم دیگر سبب اقبای انسان از بهشت می شون. علتش چیز؟ علتش همین یعنی پدیده رنگارنگی را نمیپذیرد. این ادیان اسلام و مسیحیت و یهودیت جهان را به دو بخش میکنن اونها در بلافاصله با مسئله نسبی شدن حقیقت روبرویند که از آن میتوریزند برای آنها رنگهای گوناگون حقایق نسبی به وجود میآورند چون رنگها برای آنها جدا و پاره از هم درک میشوند این فرم دارد با فرهنگ ایران که رنگها و آهنگها را به هم پیوسته درک میکرد در انتخاب میان ارزش انتخاب میان عقاید و مذاهب و احزاب فوراً احساس دشمنی و کینتوزی و وجودی با هم میکنند در صورتی که در فرهنگ ایران این احزاب و این طبقات و اقوام و اینها اینها رنگهای یک رنگین کمانند یعنی به هم پیوستند به یک هارمونی تشکیل میدن و اصلا معنای تضاد تر نمیشود معنای کینتوزی و دوشمنی تر نمی شود پیدایش مفهوم ارزش در اخلاق و اجتماع و سیاست در قرب چیزی جز بازگشت به خدایان کفر نبود یعنی به پاگانیسم یا در آلمانی به هایدنتوم با یونان این خدایان یونان و روم که خدایان تیپی بودند وارد شدند اخلاق و اجتماع و فرهنگ ارزشی جایگزین اخلاق مسیحی یا اخلاق ارادی که استوار بر دو جپی متضاد است شر. که یکی باید دیگری را نابوچازد شد اخلاق اجتماع و فرهنگ ارزشی که از هایدنتوم از پاگانیسم آمده بود جایگزین اخلاق مسیحی شد نیکوبد مسیحیت و یهودیت و اسلام و زردشتی ارزشی یا تیفی نیستن که به هم پیوسته باشند، که کشش باشن اکنون در قرب جوامعی ای داریم که ناآگاهانه بر شالودی انسان ارادی ساخته شدند چون که این اخلاق فقط انسان را در اراده میشناسد نه در کشش هایش وقتی این اراده است که باید عهد ببندد که باید میثاق و پیمان ببندد و باید اون کشش ها را قربانی این اراده بکند یعنی انسان رو دوپاره میکنن عواطف و اینها دشمن میشود هبابوه هست دشمن انسان میشود این چی است که در قرب جوامعی داریم که ناآگاهانه آگاهانه بر شالوده انسان ارادی ساخته شدند ولی آگاهانه خواهان ارزش تیفی در اخلاق و سیاست حقوق و همیشه با این تنش و کشمگش زندگی میکنن این مسئله قرب است اخلاق در غرب با رواج مفهوم ارزش رنگین شده است و این خدایان کفرند که میکوشند باز منش اخلاق را مشخص سازند و جهان را از زیر سلطه اخلاق سیاه و سفیدی اخلاق خودی و ناخودی یک خدایان نوری آزاد سازند هویت ارزش تیف و گستره است قوس غذهی رنگین کمانیاس و به سختی میتوان آن را با مفهوم نیک و بد یا خیر و شر یا سفید و سیاه یا مؤمن و کافر یا دوروند و اشوند یا خودی و ناخودی در ادیان نوری آشیاد یک عمل یا اندیشه یا گفته ارزشی روان در طیف می شود و بحث نیکوبت به کردار ازداد به کنار نهاده می شود وارد کردن مفهوم ارزش در این ادیان و مذاهب و ایدئولوژی ها که استوار بر ازداد خیر و شر بر ازداد کفر و ایمان هستند مشتبه سازی دو پدیده ناسازگار با هم است اسلام و مسیحیت و یهودیت ارزش ندارند این عبارت کردن این مفهوم به کلی مشتبه سازی واقعیات است این توم این پاگانیسم این خدایان دوره پیچین است که ارزشی هستند مشتبهسازی دو پدیدهٔ ناسازگار با هم است ما کل این واژه ارزشی را در چنین فضایی بکار میبریم که اصلا فضای آن نیست متضاده با این فضاست یک مؤمن مذهبی و متدین و مکتبی در طیف ارزش ها مسئله نسبی شدن خیر و شر ایمان و خوف حقیقت و واطر یا راه و مستقیم و راه گمراهی را میدانند یک راه راست است بقیه راه ها همه چی هست همه کجراه هستند گمراه هستند یا این یا آن اینها از اصلا بریده میشند راه ها تیفی نیستن این که در پرهنگ ایران راه ها بودن هر کسی راه خودش را می روید. ولی این راهها به هم پیوسته می شود. این ارتا خدای ایران به رگ ها و راهها ها گفته می شود. این کلمه راهو ارتا سیمرغ اسمش راهو رگ بود همه رک ها خدا بودن همه یک خون رو هملو نقل میکردن این بود که همه راهها با هم در کنار هم به هم پیوسته بودن این فرق دارد با راه و بیراه که در این ادیان تر هست یک مؤمن و مذهبی و متدین و مکتبی در تیپ ارزشها مسئله نسبی شدن خیر شعر، شد. ایمان و کف، حقیقت و باطل یا راه مستقیم و راه گمراهی را می داند. برای اون که اخلاق و معیارش استوار و مفهوم ارزش باشد اعمال و افکار را هرگز در مقولات نیک و بد و خیر و شر و ایمان و کف خودی و ناخودی نمی ببینید جمهوری بعد یک فرم نیست که ما از غرب بگیریم توی هواپیما بگذاریم به ایران انتقال بدهیم بحث یک فرهنگ است این مفهوم ارزش باید جای امر به معروف و نهی از منکر را بگیرد ارزش باید جای خیر و شر و مؤمن و کافر را بگیرد این مفهوم ارزش قرقاتی کردن امروز های اسلامی اسلام ارزش ندارد مسیحیت ارزش ندارد یهودیت ارزش ندارد اینا بحث اینجاها بحث این بحث است مفهوم ارزش بازتابی از باز از فلسفی رنگ و آهنگ و تنوع گوهری آنها در گستره داد و تچت در بازار زندگی اعمال و افکار در بازار زندگی باید رنگ داشته باشند، تا کشش داشته باشند. رنگی که میفریبد رنگی است که رویش گوهری جان آن چیز نیست و رنگ نیست رنگی که میفریبد پوشه است که میپوشد و پوستی نیست که بر گوشت روید و برگی نیست که جامعه درخت گیاه است پوستی که رنگ دل و خون روان از آن دل را ندارد پوست نیست ببینید فرق دارد پرهنگ ایران بین پوست و این صورت که به جسم نچسبیده است این پوشه فرق میگذاشد خدا پوست بود یعنی چی این رنگ این خون میآمد در پوست پوست را زنده می کرد فرق دارد پوست چیزها. صورت در فرهنگ ایران پوست چیزها بود این پوچه این جامعه که ما را می فریبت چیز است که رنگ دل و خونه روانه از آن دل را ندارد بلکه پوشه چیست برای تیره و نادیدین ساختن پوست خشکیده و اب سرده و چروک خورده این از که خدایان ایران خود بودورترین خدای ایران خرم که اسم انهوماب و مشتری هم داشت این پوست جهان شمرده میشد. این پوست جهان برابر با پوست انسان بود یعنی چی؟ یعنی پوست انسان خورم بود به پوست توخ و ایرانیها ایرانی ها می یعنی پیکریابی خداست در فرهنگ ایران دل ارد نامیده شد که ارتا باشد یعنی سیمور و رکهای همه تنها و درختان و رودهای سراسر گیتی که متناظر با ساختار تن انسانند این همانی با ارتا دارند ارتا شده از واجه عرس که رودخانه نیست این هم همون واجه ارتاست رودست رگست اصلا آورتا، ارتی این رگ هنوز هم به این نامها و هم در لاتین هم در فارسی نامیده می شوند رگ ها در بنده این همانی با ارتا دارند و در سیستان بنابر عبوره هان در آتارالباقیه به ارتا و هیش راهو, راهو میگفتن که به منای رگ است. خون در دل خون در دل رو که رنگ نامیره میشود این رگ به پوست میرسانم تا پوست رنگین و زیبا شود سیمور خودش خون در دل هست یعنی رنگ هست و خود را با رگ مستقیما به پوست متصل می سازد. دل رابطه مستقیم با پوست دارد رنگ در پوست پدیدار می این است که در فرهنگ ایران صورت یک چیز مجازی نبود صورت پوست چسبیده به جسم بود خدا پوست انسان بود از این رو خود این خدا خرم مشتری پوست و زیبایی و لطافت, لطافت شمرده میشد این بود که سپهر ششم را که پوست است به همین علت چون از این پوست جان را نشان میداد تنها پوشه نبود بلکه این رنگ این خون در پوست چک چک چهره به خودش میگیره. این بود که بعدش اهورامزای زردوش و زئوس خدای و اونان درست این سپهر ششم را که پوست باشد به خودشان نسبت دادم آنها خود را پوست رنگی این جهان میدانستند. چون صورت یابی رنگ دل اصل رنگ است این ببینید این مفهوم صورت العاده مهم است این عیده صورت بریده از جان که بعدش متداول شد مثل که در ازهان جاری شد این مفهوم پوست ایرانی نبود مثلا مولوی میگوید پوست ها را رنگ ها مغز ها را زوغ ها, ها با مغز ها کی کند هم مثبی دل همیگوید که تو از کجا من از کجا من دلم تو قالبی تو رو همی کن قالبی این پوست و رنگش پوست و رنگ حقیقی نیست که خون دل آن را رنگ می کند و زندگی را در آن آشکار میسازد. این مفهوم مفهوم این, این صورت و این و جوهر در فرهنگ ایران, ایران به دو دنیا قائل نبود واجه و صورت واژز رویده است چقدر از شیرابه گیاه این است که پوست فوق العاده اهمیت داشت در, در تئولوژی زردشتی پوست چیز اهریمنی شد. ولی در فرهنگ ایران پوست صورت قالب با شیره و خون این همانی داشت. جوهر جسم در صورت نمودار میشد این است که بایست به صورت خود اهمیت داد یک شعری هست از صاحب که این مفهوم پیوستگی این درون رو با بیرون نشون میدهد. و من با این گفته این, شخ... این گفتگو رو به پایان میرسانم توحیدستی توحی سخن را میدهد رنگ دگر صاحب توهی دستی سخن را میدهد رنگ دگر صاحب ندارد ناله جانسوز نی، چون نی پرشکر باشد. ندارد ناله جانسوز نی، چون نی پرشکر باشد. وقتی نی پرداشکار است ناله جانسوز ندارد. این است که این به مفهوم این توهی بودن درون نشان میدهد. که در نوا پدیدار می شود این همینطور رنگ هم همین معنا را داشته است توی دستی سخن را میدهد رنگ دیگر صاحب